خب بسم الله الرحمن الرحیم تقسیم الاسمی الى جامد و مشتق اسم تقسیم به دونو میشه جامد و مشتق الغبارو الامثله الغبارو سائرون اینا همشون جمله اسمی هستن اولی مبتدا هست دوبومی خبر هست همشون هر شیشتا مثال الغبارو سائرون اینا میبینید دوتا اسم اولی اسمی هست که از کلمه دیگه گرفته نشده است غبار ولی سایر از کلمه دیگه گرفته شده است از تووران گرفته شده است الغسن مقتو انغصن به شاخه، شافه م秒نم از کلمه دیگه نگرفته شده است ولی مقتو از قطع گرفته شده است الرجل قصير رجر ریشه دیگه نداره رجول دیگه ولی قصير از قصر گرفته شده المشي هم مفید مفيد از کلمه دیگه ای گرفته شده است العدل محمود محمود هم چنین الظلم مذموم مذموم هم پس شش تا کلمه اولی جامد هست و کلمات دومی‌ها مشتق هست چون از کلمه دیگه ای گرفته مثل ظالم که از گرفته شده ظلم <تصفيق> یه علفی توش اومده باله اسم فائله یا مظلوم یا ظلام اینا همیشون از سی گرفته شدن بله، پس اینا مشتق هستند. ولی خود جامد بعدش میاد میگه که بردونو هست یا اسم ذات هست یا اسم معنا که در قواعد میخوریم القوائدو الاسمو قسمانی اسم بر دو قسم هست جامد و مشتقون اسم جامد و اسم مشتق الف فالجامدو ما لم یخذ من غیری جامدان است که از دیگه ای گرفته نشده باشد از غیر از خودش گرفته نشده باشد و هو نوعان و جامد بردنو هست اسم ذات و اسم معنان اسم ذات و اسم معنان اسم ذات شویونید؟ مثل غوصن، مثل رجول سه کلمه اول، الغبار، الغوصن، الرجول، اینا اسم ذات هستند ولی المشو، العدل، الظلم، اینا اسم معناه هستند اگر دقتی داشته باشیم فرقشون با هم فهمیدنشه مثلا عدل کلمه که قائم به ذات خودش نیست کلمه که قائم به ذات خودش نیست یا مثلا ظلم یا ماشی یا مثلا النوم نوم قائم به خودشه یا نکار که دیگر فس اینو یه اسم معنا اسم ذات بسه غسل شاخه اسل رجل اینا اسم ذات هستن از این اعتبار بس والمشتق ما اوخذ من غيره مشتق ان كغيرفه باشده از غيرش قاعده تا كتاب مصادر المشتقات هي الاصول التي يكون منها الاشتقاق وجميعها من اسماء المعاني ميگه مصدر مشتقا خب مشتق کلمه‌ای که از کلمه دیگه گرفته باشه اینو میگن مشتق اونی که ازش گرفته به اون میگن مصدر دیگه از اون گرفته شده میگه مصدر داره مشتقها هی الاصول اصول لتی اصلی هست که یکونو من الاشتقاق اشتقاق از اون انجام میگیره. و جمیعوها من اسماء المعانی و تمامشون از اسمهای چه هستن؟ بل مصدر از از از ذات نیست از معانی است مصدر از اسماء جاء مثل مش مصدر ادلول انوم النوم آه؟ القاتل. بس القتل مثلا اگر بگیم القتل مذمومون القتل اسم جاء القتل اسم معنی یانه ولی اسم معانی ذات نیست خوب پس این بود از مصدر از و مشتق اما درس بعدی المصدر رو خوب خوب جسد. بله مشی, عدل ول بله مشی مگی عدل کدوم ها رو بگی؟ اینا خودشون جامده ظلم و ظلم ز... مهموم مهموم جامده ببین گفته بود جامد بردن رو هست اسم ذات دیگه چی؟ اسم معنا غبار و غصن و رجل اسم ذات هستن المشو و عدل و ظلم اسم معنا هستن ولی همه شون خود مدر جامده اونی که از مصدر گرفته میشه مشتقه خود مصدر جامده اونی که از این مصدر مثلا نام جامده ولی انناعه چه هست؟ پس دیگیم درست بعدی